عوذة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رويان مسلم جعفر صلوات الله عليهم آن گفت لحشام بنهاکان عشام من صدق لسان او زکه و من حسنات نیت او فی رزقه و من حسنه به روح و به اخوانهی و اهدهی مد امرو روایت از موسیقی جنفر سربات لایله منغول است که حضرت خطاب کردن به خوش آمود نهکم فرمودند این جمعه اول کسی که صدق لسان داشته باشد به ما یعنی مقید باشد دروغ نگوید اون راست من صدق لسان اثر راستگویی بر روی اعمال انسان خدسا دو اثر داشته یک این که بر اعمال نیک انسان می افزاید. بر اعمال نیک زکا هم بحنای افضایش هم پاکیزه می سرده بر اعمال نیک انسان می ذکر زکا عمل دو عمل انسان را هم پاکیزه نکنه یعنی انسان عمل زشت از او سر نمی خلسم ما را داشت من صدق لسان او هو عمله دوبار و من حست او هو فی رزت اگر کسی از نظر درونی نیتش نیت خیر همیشه باشد حسن نیت رو میگیم اونه میگیم سطر لسان در درمیگیم اینه میگیم حسن نیت هیچگاه در ذهنش این نیست نعوذ بالله کار زشتی انجام بده بلکه همیشه تو زهنش این هست کار خوب انجام بده تو زهنش ها. من حسنت نیتو ها. زیدم رزق به زنم سابقه من این معنام گفتم اون موجب میشه که به روزی رو افزوده بشه رزقش زیدفی رزقه همین نیتت که اینه که اطاعت خدا بکنی کار خیلی بکنی تو نیتت اینه دلت بخواه به تبیر مخواهی سادهش کن کسی که دلش میخواد کارهای خوب بکنه همیتین دیگه خیلی فارسیش کردن کسی که دلش میخواد همیشه کار خوب بکنه خدا روزیشو زیاد خیلی, چیزم به زیادتی روز کنی؟ خیلی چیز موجب به زیادتی روزشه ها توجه کنی خیلی چیز.ما لا به تو آیش خدا فقط صرف نیت. حتی لازم نیست شکرن لله بگی الحمدلله بگی روایت <تصفيق> اینجزی. من حسنت نیتوهو زیدفی رزقه دلش میخواد کارای خوب بکنه خدا پسندانه بکنه دلش ببطر میخواده چون همین پیتو زینش هست این جمعیش روزیش زیاد میشه سه و من بر برهو به اخوانهی وعده مدعا کسی که کار نیک انجام بده نسبت به برادران دینیش و خاندانش داشته می به اونها کار نیکنی اثرش اینه که طول عمری مدت عمرش صدق, صدق لسان صدق یت صدق و از این طرف هم کار نیش نسبت به دیگران انجام دادن اینها هر سه مؤثر است هم روی عمل اولی گفتند دو اثر دومی دو هم نسبت به روزی و سومی هم نسبت به طول چی